ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله لاهلی والصلاه لاهلها اما بعد دوستان و سروران عزیز از اینکه در جمع گرامی شما حضور پیدا کردم بسیار خوشحالم و این مایه ابتخاری برای من هست که در این جمع نورانی حضور پیدا کردم و این هم برای خودم یک نوع جسارتی بشتاب میآورم که در محضر اساتید بزرگوار خودم و بزرگواران و علمای عزیزی که همه اونها مایه ابتخار ما و مایه ابتخار اهل سنت هستند در حضور اونها کلماتی را عرض بکنم، اما اسم من را بردند و به صورت مختصر چند کلمی را در خدمت شما بیان میکنم دوستان عزیز همون طوری که همه شما مطلع هستید و هر بار و هر وقت ما میشنویم که در جاهای مختلف دشمنان با انواع ترفندها و انواع هیله ها با کاریکاتورها با فیلم ها و با ابزارهای مختلفی دل های ما مسلمانان را رنج می کنند و دل های ما را با این کاریکاتورهایی که در مورد پیامبر اسلام می کشند دل های همه مسلمانان جریه دار می شه. ما در مقابل این جسارت ها چه وظیفه ای داریم؟ این را هم بدانیم که در مقابل کسانی که به پیامبر خدا صلی علیه و وسلم جسارت می کنند خود الله تعالی اعلام کرده است که من در مقابل اونها هستم و برای اونها لعنت دنیا و لعنت آخرت هست چنانکه که می من اون اهانت و ناسزای مستهزین را از شما دفع می کنم و این را هم در تاریخ ما مشاهده کردیم ابو کسانی که در مقابل اسلام و پیامبر اسلام جسارت کردند، اونها جسدهایشون در زبالدان تاریخ انداخته شد. اینها کسانی که جسارت کردند، اونها همهشون یا کشته شدند یا به نحو دیگر اینها از بین رفتند دزا این را بدانیم که هر کسی جسارت بکند و بر این جسارت پایدار بماند. الله تعالی خودش در دنیا او را مجازات می کند و همچین در آخرت هم برایش عذاب سخت و دردناکی است. خب در این مقابل ما با دفاع از بر خدا صلی علیه علیہ وسلم این ابتخار را برای خود منصفت می کنیم. که ما اگرچه پیانبر خدا صلی اللہ به دفاع ما نیازی ندارد ولی ما با دفاع از اون خودمون را مبتخر میکنیم خودمون را مبارک میکنیم و با این کار خودمون یک گامی در راستای دفاع و نصرت الله و رسولش برمیداریم توجه بکنیم دوستان عزیز دفاع از پیامبر خدا صلی الله و وسلم تنها وظیفه اولمانی نیست تنها وظیفه اهل علم نیست. در صدر اسلام اگر نگاه کنیم زنانی بودند که از پیامبر خدا صلی الله و وسلم دفاع کردند. حضرت فاطمه را می بینیم که وقتی که دشمنان اون ها و چیزهایی را که نامبارک و نجس هستند بر روی پیامبر میریزند میاد با دستان مبارکشون ها را دور میکنه می بینیم که در جنگ احد حضرت طلحه وقتی که شمشیر از دستش میوبته برای اینکه تیر تیری شمشیری به پیامبر اصابت نکنه دستش را سفر پیامبر صلی الله و وسلم قرار میدهد و نمیگذارد که حتی تیری به پیامبر برخورد بکند داستان اون زنی را که چند نفر از دوستان و نزدیکانش را از دست داده بود پسرش را پدرش را برادرش را و اینها را از دست داده بود و شهید شده بودند در جنگ وقتی که مسلمانان میان و مردم میترسند که بین بی خبر شهادت این عزیزانش را بدهند اما وقتی خبری اونها را میدهند میگن که اینها را ویل بکنید اول بگویید که پیامبر چطور است حال و احوالش چطور است لذا وقتی که سلامتی پیامبر را به شن اطلاع می‌دهند ایشان از خوشحالی خوشحالی می میکند که بعد از سلامتی پیامبر صلی الله علیه و بقیه مصیبت ها قابل تحمل هست و داستان اون دو تا نوجوان را که در جنگ بدر اینها به حضرت عبدالرحمن ابن اب عرض کردند که اموجان اون ابو جهلی که به پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم می کرد کده کدوم از به ما اون را نشان بده که ما با این شمشیرهایمون اون جواب اون جسارت و توحینهایش را بدهیم وقتی که عبدالرحمن ابن غاب به اون نشان میدهد، لذا با شمشیر بر اون حمله می کنند او را از پای در می آورند حضرت حسان با وجود این توانایی جنگیدن نداشت با زبان شعرش از پیامبر صلی الله علیه و دفاع میکرد لذا هر کسی از ما در هر لباسی هستیم چه کوچک باشیم چه بزرگ باشیم وظیفه ما همین است که از پیامبر خودمون دفاع بکنیم ما مسلمانان بدون محبت پیامبر بدون دفاع از پیامبر صلی الله علیه و ایمان ما کامل نیست لذا باید این وظیفه خودمون را عمل بکنیم لذا به صورت تیترو چند مورد را که ما میتوانیم در زندگیمون اینها را به دفاع از پیانبر بیان بکنیم مطرح میکنم و مظاهب آاقات شما نمیشم و از اساتی عزیزمون استفاده میکنیم. اولین چیزی که ما باید به هم خودمون به اون عمل بکنیم و هم به بچه هایمون یاد بدیم این است که محبت پیانبر را، برای اونها بیان بکنیم این است که های پیانبر را بیان بکنیم مهربانی پیامبر صلی اللہ علیہ با کودکان با دشمنان با دوستان با حیوانات اینها را بیان بکنیم و با این وسیله محبت پیانبر در دل های ما جایگیر بشود ما بیاییم تنها بشنیدن چند جمله از پیانبر اکتفا نکنیم تنها به این جلسه اکتفا نکنیم از این به بعد ما بر خودمون را متحد بکنیم که در مساجدمون، در خونه های همیشه درس تفسیر درس سیرت پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم باشد در خونه های در مساجد مساجدمون از پیامبر صحبت بکنیم و برای کودکان برای اهل و خانواده کتابهای سیرت را تهیه بکنیم در اختیار اونها بگذاریم که استفاده بکنن و همچنین کودکانمون را خودمون را معذب بکنیم که احادیث پیانبر را یاد بگیرند، حفظ بکنند، از کار پیانبر را، اینها را یاد بکنند و در جاهایی که پیامبر صلی الله علیه و اینها را گفته است، اینها را بخوانند و استفاده بکنند. اونها را کودکان و خودمون را مکلف بکنیم که سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و را در زندگی به صورت عملی اجرا بکنیم. ما خودمون را مکلب بکنیم که با دوستان پیامبر صلی الله علیه و دوستی بکنیم اونا را دوست بداریم صحابه را دوست بداریم اهل بیت را دوست بداریم علما که وارثان پیامبر صلی الله علیه و آله هستند اونا را دوست بداریم از اونا حرف شنوی داشته باشیم ما با هایی که در مساجد و در جاهای دیگر برگزار می شود و علماء هم باید در این زمینه اقدام بکنند و همیشه جلسات سیرت را برگزار بکنند در اون جلسات شرکت بکنیم و همچنین در خوندن و بیان کردن درود بر پیامبر الله علیه سلام کوتاهی نکنیم هر وقت که اسم پیامبر صلی الله علیه سلام را می شنویم درود بفرستیم بر پیامبر الله علیه سلام بخیل نباشیم بخیلون است که اسم پیامبر صلی الله علیه سلام گرفته بشه اما بر پیامبر خدا صلی الله علیه سلام درود نفرستد جز بخیلان نباشیم و همچنین ما در تمام زندگیمان ما بیاییم صنت های پیانبر را اجرا بکنیم. اینطور نباشه که بگیم که ما تاجر هستیم دیگه ما اون عمل کردن به سنت های پیانبر این وظیفه و ما وظیفه طوللا است نه پیامبر هم تاجر بوده است. لذا اون پیامبری که تاجر بوده است اون نگاه بکنیم که در تجارت شکار کرده است. اون پیامبری که همسر فرزندان همسر، از واجش بوده از زنانش بوده است بدون عمل بکنیم که اون با همسرانش چطور برخورد کرده از ما با همسرانمون همون برخورد بکنیم اگر ما فقیر هستیم لذا پیامبر هم فقیر بوده است لذا اون حالات پیامبر صلی الله علیه و در حالت فقر را اون حالات پیامبر در حالت ثروت را اینها را مد نظر قرار بدیم سیرت ها و سنت های پیامبر صلی الله علیه و را عمل بکنیم اون زمان ما مسلمان واقعی میشیم الله تعالی میفرماید که برای شما در زندگی پیامبر صلی الله و سلام الگوئی کاملی هست برای همه الگو هست برای کودک هم الگو است برای پیر هم است برای تاجر هم الگو است برای اون فقیر هم الگو است برای اون عبادت گذار هم الگو است و برای مدرس هم الگو است برای استاد هم الگو است برای معلم و دانش هم الگو است زمانی که پیامبر صلی الله علیه سلام در مقابل فرشته الهی مقر... فرشته مقرب فرشته الهی حضرت جبرائیل نشسته بود دوزانو و اونجا تلمذ میکرد این هم برای اون دانش آموزان لذا درس الگو است که باید از پیامبر صلی الله علیه سلام الگو برداری بکنیم لذا ما برای اینکه اون خوب به رسول الله صلی الله علیه سلام را در دل های امتمون ایجاد بکنیم لذا بینها بین توصیه‌ای که از اوولما ننگ شده است و من برای شما مقداری را بیان کردم بین عمل بکنیم. همییشه مق... برای جوانانمون برای دانش آموزان برای پیرانمون برای اینها مسابقه ایجاد بکنیم و اینها را تشویق بکنیم که بیان در مورد پیامبرشون مطالعه بکنند در مورد پیامبرشون بررسی بکنند و سیرت پیانبرشون را استفاده بکنند و همچنینین ما، هر کسی طبق اون شگلی که داریم لزا وظیفه دفاع از پیانبر را داریم اونای کولما هستن اونا هم وظیفه دارند که بیان اون سیرت پیانبر را بیان بکنه اونا که شاعر هستن اونا وظیفه دارند که با زبان شعرشون از پیانبر خدا سلاله آلسلم دفاع بکنند و بزرگی و مناقبش را برای مردم بیان بکنند اونای که نویی سنده هستن اونا وظیفه دارند که سیرت پیامبر را برای مردم بنویسند احادیث پیامبر را برای مردم بنویسند اونها را به اون بکنه هر کسی که اون توان و وظیفه‌ای که داره بذار در مقابل این پیامبر ما وظیفه داریم اون رحمتی بوده است برای ما اون پیامبری بوده است که برای ما اشک ریخته است اون پیامبری بوده است که در سخت‌ترین لحظات برای امتش اشک ریخته است و در سخت‌ترین لحظات در قیامت هم هر که از زبانش بیرون میاد امتی امتی هست برای ما لذا اونجا عشق میریزه دعا میکنه شفاعت میکنه لذا این پیامبر ارزش این را دارد که ما جان خودمون را مال خودمون را وقت خودمون را برای اون بگذاریم لذا بیشتر از این مصده اوقات شما بزرگواران نمیشیم انشالله از بقیه یساتیت استفاده میکنیم و آخر دوانان الحمدلله را بزرگوار